خوشحالم که با اتوبوس سفر می کنیم می توانیم روستاها و جاهای زیبا را ببینیم بله جاده تهران نیشابور قشنگ است کمی کبیری است مسجدها و رسولانهای زیادی در این جاده می بینم درست است چون ماشینهای زیادی در این جاده حرکت می کنند. مسجد و رستوران‌های زیادی در مسیر هست. بعد از ظهر به نیشابور می رسیم. بله، حدود ساعت سه. می توانیم امشب به بازار و مسجد جامع نیشابور برویم؟ حتماً. اول در هتل استراحت می کنیم بعد برای نماز به مسجد جامع میرویم و کمی هم در بازار گردش میکنیم بهترین سوغات نیشابور چیست؟ فیروزه فیروزه نیشابور بهترین فیروزه دنیاست است فیروزه خیلی گران است نه. این سنگ آبی بسیار زیبا نسبتا ارزان است. خیلی دوست دارم یک انگشتر فیروزه بخرم.